بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب الله على سيدنا رسول الله وعلى اله الرحمن الرحيم لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله از شد که بخص درباره لزوم فخت بود و نتیجه بحث و خدمتون عرض کردیم و اصولاً این بحث رو در اقتدار با عنوان لزوم فخت از مخصص بود و این بخص ها تقدیلی شد و بخص در دلیل محترم و همین هم و توضیحات شده شده شدیه خیلی و صحیح این است که این فخت لازمه ساعتونه که فصو جوه بد هیچ صورت نظریه یا اصول عملیه نمیشه کرد نه بر اساس عموم نه بر اساس اطلاق نه بر اساس حریجه حتی بر بی از جهاد. و اصل بر اساس هر کدام شده اشاره است و به بین تا یا فصو بحث دارد فصو در اصول عملیه چه فرقی میکنه یه چیه در حقیقت صحیح فصو میکنه یا به درین میره که یا نمیره صحیح نه در توهید اصوله عملی خواهده و توضیحش مفصل دادنش که این فرص هم در شبهات و حکمیه در شبهات موضوعی جن فرص نیست محل فرص نیست که مردم آرکوی به عنوان در و فرامنانی شبهات موضوعی هم ذهه کردن اصولا جهبت در شبهات موضوعیه نیست و نسبت به حسوری هم که در حکم جاری میشه اونه که به عنوان خود حکم جاری میشه استثاره نقیش هم اساس البرائه تحصیم هر دو هر که بودنش من پیش ما محل اشکال اینی هر دو اصلاح درست هست اما جاری نمیشی در احقا اساس البرائه هم چون اصلی نیست اساس الاختیار یا تخییر جاری میشه به اون هم برای خوبی به عنوانه نیست به عنوان هر دو احقاق تنجیزه در مجموعیست مردم و هم دیروز شده یعنی بعد از نهوی صحبت های ایشان آن اصلا من اومد شد یک تلخیصی رو از عبه ها میدم در اینجا نبرم بودم من تحجیب کردم پیشم که نگاه کردن این تلخیص رو ایشان تلخیص بحث فرمت رو بعد از بحث خطابات شفایی مدرشن یعنی بحث خطابات شفایی اینجا رو اندون تحجیب میشین اون بحث فرمت ایشان متعرض بله این بحث شدن یعنی در صفحه 283 جلده 5 متعرض بحث بحث شدن به چور مختصر درمدن نتایج و بروس چند تا مطلب رو ایشون باید تابقا اینجا چاپ کردن زنید. تا چهار مطلب رو ایشون مطلب رو ایشون مطلب اون بحث بحث که آنین شالا مراشد بحث بعدی که ایشون در اینجا وردن تو بحث سنیت هم مفتصلا بحث شده اینشالله توضیح از خواهد آمن بحث خطابات شخواهی است من از این مباحثی که این عنوان مفتر شده کارست کتابات شخواهی کتاب رو محرق اول این بحثی در کلمات در سنت بحثی شد خطابات شخواهی کتاب رو لیکن خب آلا علماء ما همین مداره که مفتر کردن توسعه بیشتری داره که این بعد عرض ایشون در بحث خطابات شفاهی منحج بحث بیشید شما یک مقدمت یکی خود مندبت و یکی هم سمره بحث که آیا این بحث سمره ایدار یا نه سه بحث کلامیشان نفصیب میشه. اما در بحث مقدمتیشون ننمیشن حالا اگر خواستید شما ها اضافه کنیم نه مقدمت تحرید منحجم مقدم اضافه کردن که اصلا محل نداچی ایشون مدلی رو درم کردن که سه احتمال در این مسئله هست این حصولا بحث خطابات شفایی سه احتمال درش هست احتمال اول این باشه که آیا تکلیف که نخود خود خطاب یا یا الالین آمن و عقیم و اون تکلیف که وجود صلاح باشه آیا خود این تکیف تو به بسلامت باشه ممکنه تعلق به محضومی پیدا بکنه یا طبعا به از بفرمایید که مثلا پیغمبر در محضومت تدیریشون که همه آیات در محضومت باشه در مسجد باشه آیا بگیم کنده یا و حمین و صلاح مثلا ما یک حاضرین رو تصور میکنیم کسانی در مقابلت همه یک غایبین تصور میکنیم کسانی که در مدینه در اونجا مجلس نبوده یا کسانی که مثلا خارج مدینه بودن اینا از اطلاح همون یک کسانی هم با مان محضومین تصور میکنیم که ماها باشی کسانی که اصولا در اون زمان وجود درداشتن لذا در حقیقت تحس این طور یا اقتصاص به حاضری داره یا شامل غایبین و محضومین هر دو ممکن است از مراد آزم از این بحث در خصابات بحث تکلیف باشه نه بحثی باشه به جهت لفتی یعنی بقل آروم بحث حقیقانی باشه که آیا تکلیف توجهش به غایبین و یا معلومین معقول هست یا نه این احتمال علم احتمال دوم، این که نزاع در امکان ما قادر برسنش به محلومی یا به غالبی ممکن هست یا اصلا خطاب ممکن نیست میشه پیرم برن برنگیرم در مسجد مبارکی سوره میتونه یا نظرش به ماهم باشه اصلا نظرش به محلومی خطاب توجیه خطاب امکان داره به معدومی یا توجیه امکان نداره وجه ثبوت این از خیلی اینه عدوات خطابی های الادین آیا این دلالت میکنه که الفاظی که پشت ما اصلا شامل این احکامی که هست مثلا یا یا خطاب به ما هم میشه یا خطاب به اون مؤمنی نیستی در مغالی مغالی اصلا در مسجد بودن اصلا خطابات همیشه تو مغالی که نبود حالا ایش میمسون مغالی کسانی در مسجد حاضر بودن اصلا این عدوات کتاب یا ازدین آمنو به الله و نسان این اطلالق ان کتاب به ما هم میشه به حاضر لنزی این علات کتاب یا این علات کتاب خواص است کهگستانی که حاضر در مجلس تخاج است. این سه احتمال ایشان نی کردن ازتاب کتابایی و دادن و تحریم محل نظار و این به اصطلاح فرمودن سر ن و بعد خودی ایشان که اون وشه اول و دوم بسیار مسترده و رضا محل ده که هم که بحث لحظیه. خب ایشون بر توجیه کردن که واضحه خیلی افکام را ایشان مرادیه که من این البته ببینید در قبل فرمایید مسئله که ای این تحقیل محل نزا این مسئله یا اون مسئله چیه عبده از آیان از این که اینچه اصلا در فرمون جد بیان یه که این باشه یه که این باشه خب من بند محتملاتی که بیان محتملاتا به کلمات خود و مراجعه باشه تا معلوم دو شدیه میخواد در نستمال یه که مراد از بحثی این باشه یه احتمل که مراد از بحثی اگر ما بتمانیم اضافه بحث یعنی این نکته که اصلا راه به جایی نمیبره بیان محتملات که راه به جایی نمیبره کنگه این نمید ما اگر بتمانیم تاریخ مساله رو کسانی که اولا این مسئله رو مطرح کردن و نکاتی رو بشه بخشن عبارات اونها رو سوزی کردیم کسانی که بعد آمده، اون مطرح کرده. عبارات که داده بشه نظر ما راه صحیح اینه یعنی راه درست و صحیح در حقیق حال این راه نه اینکه احتمالات یهتم تا 4 تا تا من از این مطلت به پنج احتمال توجیح کنش این احتمالات انسان عبارت همون شخصه میارد. اون عبارت رو چنمونی میکنه میبینه نقطهی که در عبارت او بعد از اون دفتاتی تا اصولی دیگه هم آمدن یا اصولی نشیه اونا هم مسترد کردن انسان داره نگاه میکنه مثلا آ اون آت اون مسترد مسترد یه چیز مرادش بود اونی که شما مسترد کردی چیز دیگری مراده مثلا همین بس رو با عنوان خطابات شهادی و عدوات خطاب که مسترد کرد میشه الله بس توفید میگن از درده سنن تصویم میکنه که مراد خصوصی این علاوات نیست چون ما در قرآن این درده احکام رویم که با علاوات خطاب نیست مثل الله علی ناسی کل به من اشتا دارده سبیل سوال اینه که ای آیا به ایسا این حکم شامل محضومی میشه یا نمیشه این باید نقطه دیگری محضرت بشه که ها انشاءالله در خلال بحث ها روشن خواهد. شد اما این اجمال مثل توتیه من رو توتیه رو برکزمت هست اما استاد خودشون می به این که رضوان الله هره این دوتا احتمال اول اینها درست نیست چرا ایشون می گذنیم که آیا تکیف به معدوم یا به قاعد میشه که اگر نه خیلی مختصر و مفید ایشون می فرماین که اگر تکیف به معنای زجر فعلی بایده خب معلومه به انسان محدوم حتی انسان قاعدتی استی که اینجا نیست ما به او بگیم بلند شو سر. اینیست شوشیم بلند اگر مراد زجر فیلیس و دست فیلیس به قاهر نمیشه. اگر مراد زجر انشالیس و بحث انشالیس به قاهر نمیشه. به معدن میشه. چه مشهد داره؟ میدونم این مطلب هست. یعنی در حقیقت بنایشو میفهم. اگر به این جور باشه اینجور، اگر به اون جور باشه شامل نمیشه. یعنی در حقیقت ایشون می دیگه جایی بحث نداره بل ازادیشون از می فهمن اگر بنایه این باشه من که راه هم کردم من رو تفسیرشون از این ابراز عمر اعتباری نفسانیست اینجا هم دارم اما جهر و تکلیف به من از این و ابراز عمر اعتباری الان نهر و قدیت ایشون می که دیگه این جایی برس نداره اگر به نهره زجر فعلی در عزم فعلی شخص موجود باشه معادل انسان باشه چون باز انسان پیدا بکنه زجر که انسان بکنه به طرفی که ولن شو اصلا موجود نیست که بلند بشه این تکلیف لحظه اگر مراد بحث فعلی و زجر فعلی باشه باید حاضر باشه اگر مراد اینشایی باشه زجر انشائی باشه یا به تعبیر که الانشون خدا خدایان و به نحو قضیه باشه و آخر باید دیگه فرض میکنه به معلوم هم میشه انجام داد این نیست که حتما به موجود باشه و بعد بهش می خرم این اختصا به اعتبارات قانونی نداره تو اعتبار شخصی هم میاد معلومه تو این تو سفارت اعتبار قانونی باشه مثلا شما فرض این کتابو رو تایید جوی شخص فعلی میکنه کنه مقابل میگیم چه بر چه حال حساب میشه اینجا گاه رو باید شما کتاب رو تمدیش میکنید ولی افرادی که معدوم هست این کار هم میشه اصلا این کتاب باشه برای پسرم هم و بچه هایی که بعد در دنیا نسل رو نوهای پسری هم بیر نسلم بعد نسل این کتاب وقت اونها باشه هر شما الان بخش موجود رو میبینید اما بطوله بعدی بکنید بینید محدوم موجود, موجود نیستن میشه وقت برای اونها قرار بودید و این, این نیست که شما آن برای بحث مفتی قرار می‌دین، بعد موجود برای بحث دوم، دوم برای سوم. نه از همه اول هم اولی تا تمام خصوص قرار بده. مشکل ندارد در باب اثبات آرمانی هم همینطوره میشه انسان جرئت بکنه برای کسی که معذوره. بذار که شب بفهمه که این نظام دیگه معنا نداره. اگر این شایع الهی باشه، نمیشه برای فائض فرزانه معذور. اگر این شایع الهی باشه، این شایع امر اعتباری این باشه. این میشه شامل محلوم بشه فضورا رفاه پس دیگه جای بحث نیست تحجیب از محلوم استاد خب بحثشون همینه تمام بحث هم همینه اگر مرادشون این باشه مرادشون این که از قبیل انشای فعلی بحث فعلی زجر فعلی از قبیل بحث انشایی از قبیل بحث انشایی از قبیل شون بحث نه که جهت شفایی باشه این که ایشم فهم مسلما علاوه تغذیه درسته علاوه درست درسته. اینا آمده این بسیاری که کدوم تغذیه درسته؟ شما یه نمیشه علا می علاوه تغییر میشه سوال بلکه یا یا علاوه دیگه آماده تغذیه دو همه که انشالله بعد توضیحاتشو ازم میکنم. بعد میفهمم که اما این که آیا امکان توجیه خطاب هست معدومیه؟ یشونم که توجیه یه دسته کتاب به قصد تفریمه اگر به قصد تفریم باشه خب به معلوم و غایب که نداره من چطور به انسانی که غایبه هم تفریم کتاب بکنه اگر مورا دسته تا تفریم نیست انابین سانوییست مثلا من میکنم ناله بکنم که بگر ای انسان ها من هستم من چی این هستم بارش هم این میشه انسان به انسان های غایبه هم بکنه اینشون اینجور توجیه فرمو در این مسئله رو که فرض میکنه به این ها خب حالی وحث اینکه آیا قصد تفعیم هست یا نیست میست مراد ایشان چیه بعد ایشان یک شکل سالسی هست که ما اول مسئلهشون بکنیم درد وارد وحثش ایشان یک شکل سالسی رو هم مصرح کردم و سالسی سال ایشان دارد اینکه قصد مت... مت... متکلم اینجور تکلم روشن قصد متکلم تفیم مخاطب در دین موضوع خطاب باشه یعنی قصد تفیم هست بسید نه برای مخاطب خیلی نه برای محضر هر مخاطبی که این خطاب برسه سخت تفیمون مخاطب میشه. اصلا نامه میلی تربی میشان شخص خواابیده نامه می فروش اگر بیژی خودان کار انجام داده این امویریات دیگری که وقت و باشه. نامه می می ا تو خونش ویزاره یا درجه صلح استاج ذرد چه که تا ده روزگه اینجا و این کار رو انجام میدهن مننا من. برای بچه ها و خودش توصیره میکنن. این می این هم امکان داره. که خطاب تفریم باشه واقعش رو ساده تفریم باشه ولی که به صورت مشروط به شرطی باشه و این مانه در حقیقت این مطالبی رو که ایشون می این همون تحریر رحل نظامی ساید این استدلال دلیل استعقامه کنده مثلا آیه مبارکه لعنزه رکن بیری و من بلر درست بکنو لعنزه رکن و من رو همی که و همین معنیش که انزاز و قرآن قاعدمون برای شما که حاضر هستی و کسانی که در مجلس شفتها نیستن به تحبیل ایشون این هم بلیزا ایشون به هم میفرمونه که این هم مانعی نداره این شفت ثبوت هم سه شفت در شفتها میفرمونه که تفریمی باشه ای که جهات سانوی باشه ای که تفریمی بشه هم کشه ایشون میفرمونه که اینه ه اون بخش ایشون وارد یعنی بعد از این تقسیم بندی که اگر تقسیم حقیقی تقسیم حقیقی به تقسیمشون به محضر مسجد معنا داره اما بکردی که در مسجد نیست دیگه معنا نداره و اگر بخواد تقسیم غیر حقیقی هم بکنه خب این که تو احکام معنا نداره مگر به همین شفت طالب که مراز تقسیم حقیقی باشه و تفکیم حیده شده هم محجوب داشته این شما می کنه از تحسن مجموع مازا کرنا اندن نظار پیه ها در وجه ایون لا یعنی معنی محسن این قصد تفکیم هم امکان خطاب این هم به یک معنی محسنی به تبدیل ایشان بر نمیگرده از کدام؟ از اجایب کاری نیست که مرموم اصطاق داده سالان همه اگر مثلا چیز می شود هم بنابراین این, این طور از بنابراین معنی اختلاف بین نسایل این, این معنی مرادی بنابراین معنی این خودش نزاق دیگه این معنا سرمشن بعد ایشون معنای سومی رو برای نزاق تصور کرد یعنی اون معنی رو میان فلدی انبغه یعنی کن محل نزاق باید وجه اون وجه اخیری که هست که آیا ادوات خطاب مثل یعنی آمنو البته ایشون نزار و روی یا عزیل لدین آمنون بردن ایشان هم هست. هر یه موضوع از اون دلالاته از خطاب حقیقی اول این شایی. ایشون بحث از این راه. آیا مثل یا عزیل لدین و اقیم السلام از این در یا خطاب حقیقی به ایشان یا خطاب این مراد ایشان از خطاب حقیقی یعنی خطابی که به فعل بحث و زج باشه این مراد ایشون از خطاب حقیقی مراد ایشون از کتاب انشائی مراد این باشه که انشاء ابراز بکنه بدون در نظر گرفتن مخاطبه معیینی مثل یای یای رزینا آمنو مخاطبه خاصی در نظر نگیره. هر کسی مؤمن بود در هر زمانی هر مؤمنی در هر زمانی که بود این کار رو انجام بده این طرح ایشان عدسالله آسیاره یعنی ایشون تبدیل رو از این راه پیش بردن که این نظر که آیا خطابات شف در حق غایبین و معلومین و جد هست این در حقیقت این است که یا یا الگین آمنو، آیا این مراد به بحث حقیقی تو تردیدیشان این خطاب حقیقی یعنی بحث فعلی, فعلی، یا مراد این خطاب یک خطاب انشائیه، یکی نظار و رو این می کنند خطاب انشائی و خطاب حقیقی در حقیقی بحث و زجر فعیلی نمیدینم در انشایی نمیدینم تحلیل ایشان در این مسئله بی این صورتی پس نظر در حقیق نظر مبارکی ایشان بی اینجا از برمیده هر برمیده هم قبیل خطاب حقیقی همون قبیل خطاب انشایی از وقتی این بحث ایشون دیگه اشاره کردن اگر مطبع بشه خب فرق نمی باشه یا بشه یا به لله للا الناس جلبه من استطاقه سبیلا اگر مخواد خدا من مطاقه اجیبه یعنی اون مسلمانی که دران پیغمبر دارن این خطاب بنارسید یعنی نقطه این نداره که فرق بین خطابات بکنه حالا به هر حال بعد این بحثات رو من توضیح بیشتری عرض می فعلا همین مقدار به بیانات احتفال می کنم و لذا فهنال اول حالا آیا خطاب خدهی داریم انشایی داریم شهست فعلال اول اولین که شموله و لغايبین فضلاً هن المعدومی میشم میفهمن که اگر خطاب حقیقی باشه این خطاب حقیقی احتمالاً مراد ایشون از خطاب حقیقی خطاب شخصی باشه مثلا این خطاب حقیقی خاصت به حاضرین بلکه بالاتر تمام حاضرین شامل نمیشه یعنی حاضرین و از این دیگیت وقت در مسئله پیغمبر به تحبیر ایشون نسیستن که یا ایوه الادین آمنون مثلا مثلا صدقه بسید حالا ده افرام با همگه این مشروع صحبت هم قافل هم مثلا طرفتو حقیقی این خطاب رسول الله نداری اگر مراد خطاب حقیقی باشه شامل اون قافلین هم نمیشه, نمیشه نم قاعدی شامل افراد قافل هم نمیشه چون حساب حقیقی به تحبیر ا ظاهرم باره که خطاب شخصی باشه حالی عجیز. اون تبدیره چی خطاب حجیجی به تبدیر ایشان است که بس و زرگ دنبالش باشه یعنی خطاب وقتی خطابه که یکی انزجار یا یک انبعاتی بعدش باشه این وقتی قافله تکلیف او از توجه بدانه میکنه با قفلت او با عدن توجه تکلیفی نداره پس بنابراین خطاب حدیدی حتی شامل تمام حاضری نمیشه فرلحن غایبی فرلحن مدونی شامل اون حاضری میشه که اونها منتفه هم توجه دارن اما اگر غافل باشن شامل غافلی هم نمیشه این اگر به نحن به تبدیل نیشون خطاب حدیدی باشه و اما اگر به نحن خطاب انشایی باشه. اون خطاب انشایی به تعبیری ابراز اعتبار نحسانی ماشاءالله. مثلا خطاب حیا هر روز ابراز دیگه انشاست یا مثلا مرادیشه. اما اگر خطاب انشایی باشه. انشایی انشا در اصطلاح ایشان در تفسیر ایشان تفسیر مشهور برای انشا. ایقاع المعنا به لحظه میقارنونه. این اصطلاح مشهور در تفصیل اینشان ایشانی تفسیر و قبول ندارن و اینشان رو به معنای ابراز و اعتبار امر نفسانی ابراز ابراز به اصطلاح اعتبار نفسانی یعنی به عبارت اون ما یه چیدی رو در افق نفس در سوق نفس اعتبار میکنیم ابراز اون عمر اعتباری اصلاح اینشان اصلاح وقتی میگیم به که کتاب به معت سومان اعتبار کردیم کتاب در مقابل ستومن ست ابراز این انشاء. شاید یا هستنگیم یا یا لدینا آمنون اعتبار کردیم اقامی صلاح رو در ذمه مطلع حالا نه اعتبار شر خاص خودش وقتی این رو وقتی ابراز می کنیم. ابراز این اعتبار این این شاید استراها ایشون این ابراز اعتبار نفسانی می کنن. و لذا در افقه نرس اول باید اعتبار بشه بعد که ابراز شد این ابراز به اصطلاح اسمش این شد کمان این ابراز حکایت مافل خارج اسمش اخباره هر دو ابراز هست فرقی در ابراز نداره وقتی این زید آمد من دارم اون قصد حکایت مافل خارج رو برای شما ابراز می کنم که آمدن زید باشه تقر می پس ور این حرفو به تهیهشام بین این شایر اخبار نیست، اما اینکه در به ابرازش، اون مبردش شاعر میکنه هر دو ابراز. این فضیسی ای که اندو داره، ساده را نگه کردیم این ابراز زن، آنالوژینتیزازی، آنالوژینتیزازی، شنایی از دنیش و تفسیر خودمون چیز قرار دیدند. درست نیست این تفسیر. تو چیزی ازشودش یه تفسیرم خوب. از توی این اسبات نسبت همیشه بعد از طلب این انتظار میشه نسبت ببینید وقتی شما باستید در رو باز کن طلب کردید یه نسبت طلبی را یاد میشه بعد از طلب شما ایجاد میشه این نسبت ماضیور عامم معمور من یه نسبت که معمور مهمور, مهمور این نسبت رو اطلاع میشه نسبت طلبی این نسبت طلبی چه رس در دست حاله شما ولی ازا اگر کسی از با امر سیره افراد درست رو هم نصفت میکنه این تفسیر ناقصه خود این تفسیر درست خوب دقیق بکنیم وقتی میخواید یکی جور تفسیر بکنیم خود این تفسیر ناقصه مثل این که مثلا بگیم آمدن در خودها یعنی انسان انتظار فوقیت سخت بشه. این فوقیت سخت بعد انتظار میشه نه این کدش این خودش حقیقت آمدن د نسبت طلبی انتظار میشه از طلب شما وقتی شما طلب میکنید این نسبت طلبی یک امر انتظاری نمیشه شما تفسیر بکنید سیغه اصلا به معنای نسبت طلبی به خود طلب با تفسیر بکنید نسبت طلب نسبت رو بعدها شما انتظار میکنی مثل نسبت زجیه نسبت ذخیره رو در حقیقت بعد انتظار میکنی اشتباه نشه تفسیر نکنید نهی رو به نسبت ذخیره خود زجره نه اینکه نسبت زجریه باشه پس بنابراین مرحوم حسابت عدس الله و سره این مطلب رو فرمودن و حاصلش اینه که این چون ما اگر خطاب حقیقی باشه تمام حاضرین شامل نمیشه چه برس آیوین و مردمی به تحضیل ایشان اگر کتاب بود باشه چرا؟ مشکل نداره چون ابراز می کنید این اعتبار اعتبار چی بوده؟ اعتبارش به تفسیر ایشان جعه سالاب در زنی مخلتفین لجومتیم این ابراز می‌کنیم یا لجبین آنها همیشه سالاب ابرازی نه این خلاصه و وقت ترک از این زاویه که یا لجبین آمینو این خطاب هنگیز یا خطاب انشایی این, این ترجمه جواب و که شما این خطاب انشایی یعنی خود این خطاب یک خطاب انشایی کتاب حقیقی و لا, لا مناسه من الالتظام به استعمالها که کتاب این و خب در به اهل <تصفيق> از ثیرا این همین بحث یعنی من هدفم اینه که از عبارت ایشون میخونید ولی اینه که اصلا ببینید گاهی اوقات انسان یه چیزی رو به عنوان دعا مطرح میکنه دلیلش تضیح مدعا است دلیلش چیزی غیر از مدعا همون مدعا رو به زبان دیگه میفره خب ایشون میفرن مثلا قبل از این عبایت از ممن الواضح الخطابا، به بقید المعنی شمال المعدومی بعد فرض منزل از الموجود چی گفتیم فرض هست اگر کسی آمد گفت ما چرا یعنی اگر گفت خطابات شامل حاضر میشه چون میگه اگر مخاد شامل شما خود اینجا اینطور گفتیم ایشون میگه مخاد این خطابات اظهار توج... اظهار توجی توجیه الکرام نحو مطخوره ها مراد از مطخوره ها نماز. به من این واقعی دواقی فلا مانعه این در ازمه شمول حال غائب برای معلوم مانعه این نداره که شمول پیدا رو کنه برای غائب یا معلوم من دیروز هم به بحثی هم که همون بحثه از شامده کامل زیارا از کردم خیلی از استاد عجیبه این اولین تا که این عبارت خود محموم استاد باشه شما فلا مانع نشون بحثه مانع نیست تجور از ایشم بحثه نه مانع مانعی نداره که شامل معدوم بشه چرا؟ چون معدوم رو منظره موجود فرض میکنن بعد فرضی منظره موجود خب این آن میخوان همینه بگن بگن اگر میخوایی شما شامل معدومی بشه باز فرض موجود کنی این فرض که خلاف قاعده اگر دلیل ما یا یا هلذین آمنوست این یا یا هلذین آمنو از این حاضرین فرض میشه. سحن غایبین به تغییر شما باید اون رو فرض بکنیم رو به منزله موجود این فرض خلاف رو باید داریم میخواهیم به مجرد اینکه که شما فیلید هلا مانه نه مانه اینیش کنیم مانه اینیش کنیم مانه این که این مانه این هستن اینمه کلام اینا میگرد استدهار اینه نه اینکه که مانه ای هست یا نه اما از در مبارض اینی کیفیت استدلال یا استظهار یا کیفیت برس و منحج برس داره بشه برس از اول باید کاملا با دقت توجه تب... رو کنید ایشون هم تلا مانه انده از منشمول شتاواد دلغاه بلی محدوم بعد فرزنی به منظرت موجود کما و لازم و کن قضیه حقیقیتا حقیقتا حقیقیت قضیه حقیقیت خب این بحث اینه اونا بخواهیم با قول شما حالا اونا بخواهیم بگن ما باشیم و ظاهر این خطاب یا این قضیه حدیجه نیست اقیم و سلا ظاهر این خطاب که قضیه حدیجه نیست شما میپنیم مانعی نداره قضیه حدیجه باشه محضوم رو به منظر موجود ترسان مانعی نداره بسید مانع نیمی بسید استظهار بگر میپنیم در سر اصطلاح در سر فهمی در سر فهمه در این ظهوره این حال یکی اگر شخصی که دیویدشون که هم در در مسجد ازدواج کرده حالا توی مسجد فیض کیوا خودی کیوا کشور شد نشسته و زنگویی هر خونه زنهاشون میزند یا یا خونه زده زهره میزند این نما یادگاری آمده حالا تو مصلب بوده نه وقت اصلا تو مسجد باشه خب حالا تو بند مختلف این می شده و, و حالات این این حالا حالا خب این این که ون متفاوت است. چرا؟ زیرا ساز می تو مرحله دیگه خودن دوی یه تو ده واسه ده تو مرحله دوی ده واسه تو مرحله دوی ده واسه تو مرحله دوی ده واسه تو مرحله دوی ده مردمی تو مرحله دوی ده واسه تو مرحله دوی ده این یا علی برلدین آمنم که کتاب عربی این توجه بگیرم کنه به انسان حاضر آیا این حکم شامل <سؤال> و غالب <سؤال> میشه خب این اتفاقی است که احکامی که در حاضر هست شامل و چون حکمی علاد و غالب حکمی علاد جماعه انما باستو انما افترناکی لناس کافه حکمی علاد احمد و غالب اصوت سوا این غبایات و عدلیبیه آمده یک حکم کنید دستی که آقای من کردن این است که با قطع نظر از عدل بیلیت با قطع نظر به اینکه ضرورت قاضی است که ما فیل با اون کسانی که زمان فیغمبر بودن با اونها شریکی داریم که مثلا با نیست. و با قطع نظر نخواست از که مستاد همه کلمه های کلمه های با قطع نظر از این که در بعضی از احکام پیغمبر اکرم فرمودن این حف مال توس تو هم این کار رو انجام نده اونم داری ماخر درست اینه که اگر فرط نظر از اینها بکنیم ما باشیم و خطاب از این خطاب روشن شد اون که شما بگیم لا ماند لا که گیدیم چرا؟ شما میتونید فرض بکنید؟ فرض فر فرض که انعقاد ظهور نمیگه اصلا یکی از مشکلات من عبارت میکنم و تحکیل می‌کنم چون یکی از مشکلات استظهار ما همینه ما میگیم اشکال نداره خب اشکال نداره من صابعا این مصدب رو کاملا ترمات رو توضیح کنم و اصلا سابعا و مصدب رو توضیح دادم یه دسته ما امکان میگیم و در مقام استبلال استظهار ازش وقوع رو در میاد. من این مثال را از یادم هم که فایده آن استاد از دکتر از اصولی نیم بگم همه اصولی. بخشی از این معنی. هر یوم که استعمال مشترک در اکثر از منو اند. تغییرشون یوم که. اما سعی تو استاد ما از دسترسی آن اشغال که امکان که هست مسندی شریف من اند در ببنید. امکان استعمال که هست. ما باد در استعمال در اکثر از منو. امکان هست خودو امکان اینکه رو نداره چرا بزرگان ایشون کردن که چرا آیا بحث امکان رو مطرح کردن باز بحث وقوع رو مطرح میکردن داشته باشیم اما یعنی حالا خاطر خود حساب کرده اما اون کلی قضیه امکانی که لازم اینو محضر شما نغیزه یا دو با لازم نمیاد پس بنابراین تره مسئله اشتعمال مشترک و بسیقه امکان شبیه هم بحثی که هم مزاروانی شده ما در البته ایشان هم میدونن شما هم مراجعه بفهم دیم محصول که یک کامپی کنم هم هم موزم و اصولی البته بردشون چرا بخور بحث کردن اما موزم و اصولی سنت هم رشیدن عدیمن و حدیثن امکان رو کرد. من دیدم به سوگه از کردن چرا بحث امکان مطرح شد؟ این مدنی شد در یک مقدمه کمی که اصیدان مفرح کردن در کبرای حجیت ظهور اون کبرای حجیت ظهور این بود که وجه حجیت ظهور چیه؟ حالا آیا کشتر از مراده یا مثلا میساب اوخلایی یا کشف نوعی از مراده یا مثلا این نوع قرارداز اجتماعی مثلا یه کفی اجتماعی این درست در کبرای ظهور بود و وقت در اونجا این نتیجه رسیدن خوب درقت بکنی اگر یک معنایی از لفظ ممکن باشه لفظ اون صلاحیت رو داره خوب درقت کردی همین که امکان داشته باشه با غبوب مساویه چرا شما دنبال کشت مراد متکلم نیستیم اگر دنبال کشت مراد متکلم باشیم امکان مساعده با نیست اما اگر در نواب احتجاج باشیم همین مقدار که احتجاج جبهه لعب مولا و مولا در همین مقدار این مقدار باشه این خودش کافیه همین مقدار کافیه بسی این که آیان و اصولی نهد سنن از اول مسئله رو مطرح این مسئله از کرد قرن اول و دوم هم مطرح شد به ابو حنیکو اینها هم اثبت داده شده خلاف که مثلا گفته امکان استعمال در اکتران معنا هست این نیست از قدمای علمای اسلامی نیست که فقط تو اصول آمده بشه از همون سر اول این مسئله مطرح شده اینا میگفتن که اگر تو تحت بکنید آثار هم داره هم آثار لکیفهی داره توجه همین که شما بگید ممکن است دو معنا از یک لفظ استفاده بشه همین که ممکن بود یا سه اهل اعتماد داره در مقام مهاجم و لذا در همون بحثا بحث کردیم مثل فخر مثل یا فخر یا غزالی غزالی همین شبیه اشاره مطرح کرده میگه حق اینه که استعمال لفظ در اکثر از معانی امکان داره اما وقوعش ثرینه میخواد. وقوع شریع میخواد امکان رو قبول کنیم اونا روی اگر لفظ در قران آمد در روایت آمد در ذریع آمد امکان دو معنا درش باشه ولو در نتیجه دو معنا هم مختلف بشه این خودشی که از بحثایی بوده که در فیلم مطرح شد در زیر مباحث ظهورات چون یک بخش زیادی از فرد ظهوراته تحصیم این مثال در روایت ما داره سنیا های قرآن داره مثلا های قرآن داره که سلاست و خروع عدت و خروب. در روایت ما داره که سلاست و خروع شنید جدید داره در روایت ما داره که عده متعه قرآن او را هم آهالی که در لغت هم به معنای هیز میاد هم به معنای توخ میاد خب یه خطا کنم که نسیج شود شاهد این هر جور ادبت متحقه قرآن قرآن گایی معنای هیز گایی معنی توخی مستیم می آمدن می گفتن حالا چون دو تا احتمال داره می آمدن بگیم اگر امکان داشته باشه استعمال لفظ در مکس را کنم این قرآن هر کدومش یک قرآن باشه. یعنی گاهی اوقات مراد حیضان باشه گاهی اوقات مراد صحبتان باشه حل گفت خیلی تعجیب آقار براتون اصلا بگیم خورمان یعنی گاهی معنی حیضان چرا یک کلام یک کلام شبا میگه نمیتونه هم میگه نمیتونه دقیق اون که گفت می یعنی یعنی یومکه نتیجه گیری میکنه، روشن شد وقتی نتیجهش این میشه که شما وقتی که مدت مدت تموم شده خیلی نتیجه که نیداره می کنیم فرصان این خانم در حیضه مدت تموم شد در حیضه خب بگیم این حیضه چه تموم شد طب می بینه وارد حیضه دوم که شد طب قرآن اگر برنی حیضان باشه ادهش تموم شد دو دو, صح... دو اما اگر برحان در معنی صحران کسه صحران نشه که صحران بیسه بسه این خانم که مدتی میشه شد خیلی تمرهی فخی در زمان عده موته پیدا اگر بگیم استعمال لحظ در اکثر از معنی جایزه این عدت و لحظه برحان گاره می این نتیجه عملی هم داره در چه در تطوان نتیجه عملی داره مثلا مدت چموش در توه بگیم این یک تو اینجا توه قران این توه بعد هیج وارد توه دومش تا وارد توه دومش ادشام شلون كيف قاعده قران بله دیگه هر دو فن هیچ هر دو این مراد از استعمال شاید خالا ترک بحث رو اینجور بودی این استعمال لفت از من که در قرم اول فقاهای سنی مزر کردن این مراد این من بوده و روشن شد که این مثلاق خارجی داره نتایم لفتی و آثار هم داره یه لفتی که داره دو محنا اگر ما وقتی این اختلاق من هر دوی رابع شده که امام که فرمود مدته برنامه تهران با یعنی گاهی تهران گاهی میدان هر دو دوسته هم تهران دوستن میدان دو طب در جایی که مدتش تمام بشه اون خانوم در تو باشه یه طوری کافیه اگر مدت در دره بود دیدن اینکه دیگه کافیه اما خب الان فقهای ما یا هم کردن بر تهران یا هم کردن بر میدان یه هر دور هم نگردن یعنی ما الان که فقاهه خودمون هیچ شبیهی این احتمال من حل کردن گفته باشه یا به نحوی گفتن مراد کلمات هیجان و مراد پس بنابراین این قاعده رو خوب در ذهن داشته باشید اینی که آیان و اصولی اطلاق فقها مصدر کردن آیا لفظ مشترک امکان استعمال مشترک در دو معنا هست چون در اونجا مسابقه می دیدن مساوات می دیدن. بین امکان و وقوع و عرابه اگر امکان داشت مرابه این رو چه ممنوع؟ این رو ممنونی کسانی که ما در ظهور تشهر مراب نمیخواییم همین که لحظ قابلیت لحظ قابلیت داره برای این معنا همین که لحظ قابلیت داشت هم این مرابه ببینید پس سر این که این ها اون اصولین ما ملتفت نبودن که بگن هایا استعمال در از منا ممکن است یا واقعا منطفل نبوده که بخت در وقوع غیر از بخت در امکانه نه منطفل بوده این روی معنای و حجیت ظهوره که آریا ما تشتر مراد میخواییم بکنیم یه میخواییم بکنیم در حضران پس این رازه که استاد رفتن یه شما میگن بعد معنایش من الوازه که خطاقات به این معنای اشمال المعضومی بعد پرد نهیم موجودی الموجودی تمام دست اینه که چون اگر بخواد خطاب شامل معدومین بشه باید طرز بکنیم اونم خاطر دیگه بدون طرز چی چون طرز اینو تندیل نو اعتباره بدون اعتبار کو بیاید یاد بنوامون هیچ چیز طرز بدون طرز نشید ان شاء الله بقیه فردا